امکان برگرانی ارزی کن با این شباره کجورن دارد. لطفاً توباره تماز میگیرید. تظاهرات در برابر سفرات امریکا در پیکن باعث شده از بسیاری به بی نتیجه مندن محافظ رامی تجاری سازمان ملل اعتقاد پیدا کنند. همه یه توجه به داگلاس تامس دبیر کل سازمان ملل محتوف شده تا بلکه راه حلی مسالمت ها نیز برای روابط تیره ی دو کشمار پیدا کنند. با بحران عظیمی روبرو هستیم جناب دبیرکوه من معتقدم در تمام دنیا فقط یه نفر هست که میتونه سران پیکان رو وادار به تعهد به این موافقت نامه بکنه و این یک نفر شما ایدیو نمی دونم این حرفی جور تخریفه یا تهدید ها فکر کنم منظور جناب دویر کار اینه که شما میتونین به طرف های درگیر یادابری کنین که به شهادت تاریخ شکوفایی اقتصادی در دستیابی به سل موجزه میکنیم میبخشید خانمه خاکس من امروز ندیدم جنگی رخ داده که من بی اطلاعم همیشه یه جنگ وجود داره دیوید چه اونا، اونها شما و منم این وسط گیر کردم و سعی دارم با نمود کنم دنیا در شن جناب دبیر کل امروز با رئیس جمهور صحبت کردن و اگر وضعیت بهبود پیدا نکنه فردا از واشنگتن پرواز می‌کنن و شخصا در مراسم حاضر می‌شن برای نشون دادن حمایتشون از موافقت نامی و این آخرین راهی من مایل به این کار نیستم و میخوام این مسئله به ابتکار سازمان ملل باشه و مهم‌تر از همه این که می‌خوام مفید باشه اما متاسفانه در خدمت بدی بدون حضور دایید جمهور نمیتونه پایده ایدشو باشه رئیس جمهورو دخالت ندهیم مسئله پیشکیده تر می کنه. و در این حال ما امیدواریم که شما به عنوان یک دیپلمات موقت عمل کنید یه جور سفیر اوستنیت در واقع خوشحال میشم کمک کنم و اون وقت شما خبرساز تا دبیر کل ما فقط نامی تجاری چین را نجات میدخلی اوز میگونم الانور حوکس شما گربتون گم شده؟ بله بله درسته اون حالش خوبه؟ بله شما باید چند روز نگهش دارین براتون مشکله؟ مسئله نیست. میدونم کجا تماس بگیرم فایل های گرفت دادن برای همه مجانی البته باید بدونی کجا بری قاچه چیا و رو کشتن منو گرفتار کردن احتمال وجود جاسوس نفوزی در ارتباط باش ظرف 24 ساعت احتمالی سازش و مساله وجود داره در دست رسوش موافق بوشیم آره موافق بوشیم برای سازمان ملل کار میکنی درسته؟ خدایی ها درسته بروت اون مغازه چند تا بطری آب و غذا بخر که نگه داریم م. وقتی اومدی بیرون یک کار دیگه باید بران بکنیم یک کار دیگه؟ خیلی دوست داری هر وقت دستور بیدی من فوراً جلو تعظیم کنم این... این درخواسته همکاریه آه. انظورتو فهمیده به هده اعتمد کردم آه. او خیلی من اصلا برای مهم نیست سرت چونو ده، فقط میخوام یه حضوری خواهش میکنم اگه یه دفعه، الو، ببخشی ماری خونه هست؟ آماری نداریدی؟ به خیلی ببخشی نوازی گرفتن تلفون داری؟ اونجاست وایسا ببینم تو کی کیبت بگم هر کاری که دلت میخواد نمیتونی بکنی اینجا من دست دور میدم، نه تو الو نون بایو کی بفرمایید زدم تو خال آ خوبه میکروفون وزده چی گفتی؟ گفتم بهت میکروفون وزد کردن، نمیفهمی؟ تو فکر کردی؟ بست کم هم... بگرد پیداش کن، همین الان آه، مگه تو نگفتی به همه اعتماد داری؟ میکروفون گذاشتن، یه فرستنده الان یه جا تو لباساته یه فرستنده چطوری؟ مونش را نمیدونم، فکر میکنی چطوری رد ما را پیدا کردن؟ اص عادت نداری درسته که کنترل اوضاع دستت نباشه بازی چه بشی تو معمولا در اون طرف معادله داری اینا رو میگی که فقط دلت خنک بشه یا این که های روانیت رو خالی میکنی اگه کمکت کنم در نهایت به خودم کمک کردم خوبه پس از سفیر چین برام بگو مدت زیادی براش کار میکردی اون طرف دوری خارجی ها بود اون میدونست که آینده چین در گره است روش تخنیسید اما خب خواست فاصله رو با غرب کنه اون متقید بود میشه دیوار عبور کرد کدوم دیوار؟ منظورم از دیوار معنی شد راستش فکر می‌کردم بیشتر با این مسئله آشنا باشیم <متصفح> بگی که زنگ میزنی؟ خودت بگو ای زهریش، اصلش چیه؟ این یه باشگاه ورزشی. یه باشگاه وسایل آهن مخصوص قمار و. و؟ و مساج. خیلی دیر کردی. ای اون داداش یک و سر کرشو. مشتری هم منتظرم. خیلی خوب. میتونی حرفمو حرفامو بشنوی. با این. و میتونی با حرف نزنی با این. به کمک ده تیاج دارم. از این باید کنید! از چیزی رو که میخوام پیدا کنم! چی کار میکنی؟ کنید؟ ندارم نگرانه یه چیزی دیگر باشم! مگه من کجا میرم؟ چه میدونم؟ یه جایی که من احتمالا فکرشم نکردم! آه. اینجا بگی چرا شرط کمک کردن من به تو اینه که زندانی باشم تو زندانی نیستی دارم حمایتت میکنم به خاطر خودت خسی خونه در جنوب فرانسه داشته ببینم تو داری خواب می‌بینی الان فکر می‌کنم در جنوب فرانسه یه قیافه آشنا می‌بینه شو پلیس میسه مورو مالخ ریختیم چون تو تو تو همین چی گفتن här är det. Nej, mutita mig. <gülüyor> Lägg <gülüyor> ut mig och سلام. می‌خواهیم دستان در وسطتون باز کنم؟ ما مجووزه کس برم آو که مجووز دارین خب پس بهتره ما بریم پی کارم این لغمه باسه تو است بچه ببین ما با پلیس هم کنار اومدیم خب حالاً باید کنار بیایی با اف بی ای جسد مالیسولله گفتم از یادت خون نخور باید می‌کنی خیلی قول داری، آره من یکی بی سرکار به دو می‌کنی عوضی نشدی سر کار بهت چی گفتن شبار که شده حالیت می‌کنم اونو بسپر نشه من برو طبقه بالا تا پوست تا بکنم خواب اسمشو بنویس ببرنشون بیرون می‌دونیم گاهی مشکل میشه فرق آدمای خوب و آدمای بد فهمید همیشه معلوم نیست عزم می‌کنم خانم، این مرد مزاحمتون شده اسلحه با دستت چاپ ساکت و آروم خیلی خوب وای ساعد سایز کمرت به معمورهای FBI نمیخوره. تو دوره ی آزمایشم. خب کاپلا، چرا ازش نمیپرسی؟ ازش بپرس آدمهای بدکیان ببین میخواد هم رای تو بیاد؟ ببین. ما چفتم اون دنبال یه چیزی؟ چرا با هم همکاری نکنیم؟ چون همکاری از نظر تو یعنی رفتن من به زندان. من اصلا خوشم نمیاد. من فقط دنبال حقیقتم. واسه چی نمیدی سراغه برده‌های ویتنامی که اون تو کار می‌کنن؟ اونا با اصطورتی که تو کانتینه پیده کردی، یه جورایی رفت دارن. او وقت قهرمان می‌شی. فکرم نمی‌کنم نیازی به حکم داد ستانی باشه. درسته؟ ممکنه. خب. آو، کاپلا؟ چه؟ بیا. ممنون. یاد با این حرف موافق نیستم دیویدچان همیشه از اون موافقتنامه حمایت کرده تظاهر می‌کرده از خودت پرسیدی کی از مرگ وو بیشتر سود می‌بره غیر از همسرش اگه فردا اون موافقتنامه امضا بشه انحصار و تسلط تجاری دیویدچان هم تموم میشه و مجبور شرکت های غربی رقابت کنه با کشتن وو و توقف پیمان تجاری اون چینو برای خودش افس می‌کنه به نظر منطقی نمیاد برای یه ماشین دوست وارون باش <تصفح> خب من اومدم. حالا وارد سایت اصلی شو بعد دستوراتی رو که بهت میدم اجرا کن. امکان وارد شدن نیست. خب همزمان کنترل و alt فشار میدی f8 دوبار بار. حالا backslash enter. کوده ورودی میخواد. نگران نباش نیازی نیست. حالا آخری خط کد سفر رو دنبال کن. وزارت دفاع؟ جولیه هیچی باقی... نگو چون نمیخوام بدون این یه حقه که وقتی تمرین میکردم از یکی از دوستان م... یاد گرفتم اونا یاده دادن تو دار باشی؟ یا اینکه ذاتیه؟ ببینم منظورت از این حرف چیه؟ میدونی منظورم چیه؟ منظورم تفره رفتنه این بخشی از کار ماست رسش قهرمانای کلیشهی قطرادمند ساکت و خسته خب بقا جون وارد شده خوبه. وایستا، یه دقیق سب کن. چیه؟ از اول. دوباره بذار. خیلی خوب، حالا فریم به فریم خوب نگاه کن. قبلش شلیح چان بالا رو نگاه می کنه. باورم نمی اون می دونسته. می دونسته؟ بیشتر نقشه خودش بوده. خیل خوب اونو کوپی کن و برگر تو باشیم. 24 ساعت تقریبا تمامه. پیمان تجاری رو میسپرم به رئیس جمهور. میذارم خودش کاری بکنم. دخالت دادن رئیس جمهور جدا رو قدرتتون اثر منفی میذاره. قدرت شماست که سازمان ملالوف سر و پا نگه میداره. من دارم از تمام امکانات استفاده میکنم که اگه خبری بشه فوراً جلوشو بگیرم من مطمئنم شما میتونید از این افتزاه جلوگیری گیری کنی متکرم ایلنور همان نه گزارش ها حاکی از آنست که دبیر پل سازمان ملل از رئیس شمهور ایانات متحده توازای دخالت در این عمر و تحکیم پیمار تجاری چین قبل از توقف آنها جمع است راحت نگران نباش، برگرد فرض اسپرانی در مجتمع عمومی در بر اساس پیمان پیمار مذکور شرکت خواهند کرد. اگه چان بخواد جلوی پیمانه بگیره حرکت بعدی را از همونجا شروع میکنه خیلی خوب. میخوام این ناور به ناور صدای وو ببری برای النور هوکس. اون اینا رو می‌رسونه به آدمای صالح بدون اینکه پای منو وسط بکشه. منم میرم دوباره تکای آخر این پازل برای همیشه تموم بشه. کجا می‌خوای ببری؟ آخر اینجایی ای که مونده. بالی حالت متاسفم خانم ها که سرشون شلوغه میتونیم منتظر بمونیم پس شاعت و باشگاه بود <تصفيق> فیوزار کنترل کن عجله کنین، گد حال نو مبارک بله بیان تو شما همیشه هنگام ورود و خروج اینطور هنرمندان رفتر میکنید یا این مسئله فقط به اطلاع من منحصر میشه آقای شا خب راستش آدم ها وسوسه میکنه مثل خونه دوام آدمی آه به عنوان محصرترین فرد در این زمینه متاسفم شما جاز حقوق بگیره من نیستی. شاید بخواین به هم پیشنهاده بدین که نتونم برد میتونه اما می میترسم از اینکه که هرکز نتونین از منافش بخر من بشین خب گمونم منفعت من تو این آقا نخواه کنم آقا نالیه به قفصوندن مردی که دنبالتونه و در این حال نابود کردن یه پیمان تجاری که برات گروه تموم میشد حالا فهمیدم که هیچی از ظاهرش معلوم نیست اما بدم نمیاد اینو به هم توضیح اگه این اطلاعات افشا بشه افضاحش میتونه جدا اعتبار چینو در صحنه جهانی خدشه‌دار کنه. به این فکر نکرده بودم. ظاهر قزایا خیلی مهمه. سیاست و فریبکاری و ظواهر تشکیل میده. ai hey. hey. Asla att vända oss! Utkom att asla att vända oss! ندارن عروسا که خیمه شب باشی بدون نخ جنگ یاد میده که با نابود کردن دشمن از درون پیروز شی. عجیب نیست که یک استراتژی 2000 ساله علیه مردمی به کار گرفته شده که اونو به وجود آوردن. بهتره ما پشتلسی کنیم که این بلا رو سر ما نیارن. تو از چی داری حرف میزنی؟ صحبت از 20 سالی میکنم که چین از درون آمریکا رو نابود کرد بدون اینکه کسی متوجه بشه ولی حالا دارن متوجه میشن. تو پشت قضیه هستی. آره البته فرات با کمی همکاری دیویدچان برای گمراه کردن همه و خود دیویدچان <تصفيق> من سردر نمیارم. معلومه سردر نمیاری عزیزم. چون تو هم مثل اغلب آدم‌ها و نیستی نگاهی به اون تصویر بزرگ بندازی. من 20 سال هر روز به اون تصویر بزرگ نگاه می کنم و منتظر فرصت مناسب هستم. و می دونی حالا چی می بینم؟ می بینم چند راز دید رو خفه می کنه و با کمکهای مبارزاتی غیرقانونی بر روند سیاسی ما متأثر می زره. ترین تکنولوژی نزامیه مر میدوزه و به دشمنامون آمون میده و ما رو از درون تضعیف افون کنه مثل یک ویروس. این پیمونتاجوری زری ضربه رو به ما می زنه. و ما قاضی منعیم بشیم. ما میخواییم آمریکا رو برگردونیم به امریکایی ما؟ شما فکر میکنین نماینده کی هستین؟ نماینده ی افرادی که چندین دهه در پشت سحنه این ملت جلو بردم افرادی که دموکراسی رو از فساد نجات میدن به عنوان زنی که از توتیه چینی ها میترسه شما به طور وحشدناکی شبیه همون دورتی هستین که میخوایید جلش بیستین؟ مچکرم که به ما سر سرزدیم و تشکر به خاطر این مدرک بسیار به درد بخور مطمئنم راه خروج خودت پیدا می کنی صدام بشنوید چا بریزی که بهتر آنت بده من تو سازمان ملل گیر کردم همه چیزی زیر سن هاکس جولیا چقدر گنگه زنم تلفن اشغال بچه ها میخواییم بگید تو را الله به یالله بجنبین حیفن اونا بجنبین قپلا فراری بزرگی آمدی کن نه مرد الله ها زنگ زدی که قتل چانه توجید کنی یا به خاطر بعد از زور معذرت بخوایید اردوش، میخوایی منو ببینی قرار بزرد باشه تو همین دوره برایی؟ کله یه مهمور ناشی رو دارم میبینم جدی؟ ازت خوشم اومد سوار ماشینی چه بیا اون طرف پارکینگ منو سوار دارم نه من یه فکر بهتاری دارم باشه حالی می شد من باید درم پس ما ما چی کار کنی چه می دونم ری خودت یه فکری بکن دوست تو دسته کم نگیر دلیلی داشت که اونو به عنوان رئیست انتخاب کردم و دلیلی هم داره که از تو میخوام کلکش رو بکنی مطمئنا تو از برنامه کاری من خوشت نمیاد من قبول کردم این کار بکنم چون میخواستم نه به خاطر پول و صد البته نه به خاطر ایدئولوژی راستگرایانه ی تو بذار ترتیب شاو بدم به روش خودم این موضوع رقابت مردانه بین تو و اون رفیقت نیست تو فقط؟ یه جز کوچک و بی اهمیت از یه سیستم بزرگتری ممکن بود الان تو جای شاب اون بیرون بودی می فهمم آره یه چه تصمیمی داری؟ تقریبا نصف شب مامورای حفاظت میرن کنترل طبقه بالایی تو یه مهلت سی دقیقهی داری نگهبان همکف چی؟ ترتیب خودم میدن بله خانمی مراجعه؟ را بیافت مراجعه؟ کمک های اولیه کجا هست؟ اونجا هست حفاظت اطاعت خانم توجه برای آزمایش رادیو به حرکتی آماده باشید نگهبانای های طبقه همکف به طبقه یک زیرزمین مراجعه کنید تکرار می کنم نگهبانو یه طبقه همکف آماده برای آزمایش رد دارد. سرنخ هستی ایلنار هوکسه. حدث که از چان استفاده کرده، بعد بهش نارو زده. ماجرش طولانیه. رانم دیگی تو بکن. خدا، نسو. بسا یه طبره تو این اطلاعات باید افشا بشه؟ نمیتونم این کارو بکنم. هر ارتباطی بین قتل وو، چان، قاچاقچیا و هوکس، بواسطه نابودی پیمان تجاری چه ناجور. البته میثبات کردن سازمان ملل تبعیض داشته است. درسته. اون فقط باید رو راست باشه و حقیقتو بگه. حقیقت؟ بله حقیقتو درباره من واحد عملیات مخفی سازمان ملل همه چی. سوءخاستم میچاصونم، تو سازمان ملل رو بی اعتبار می‌کنه بله تنها سازمانی که میتونه دنیا رو آروم کنه. یعنی برگشت به جنگ سرد. کارت ویزیتو بده من. Sö Vi är sa det är خواهیم بیتند دیپلم خدا یه کار مندیه فرزند سر نیستن؟ من هم نیستم <تمتص> آه کپلر بله، منم یه پیشنهاد دارم برای تو. Amin Torbia. حالا یکم حال کنیم خنر جنگ سانت سور وصل سیزده ها جاسوس مطرو اینا تو رو یاد چیزی نمی قربانی کردن یک معمور بدون آگاهی می تواند روند جنگ را به نفع شما تدید دوستی با شما کسب اعتمادتان و در همان حال کشاندن شما به پرتگاه نابده ناامیدم میکردی شا همیشه یک قدم عقب بودی باید بهت بگم دوست وقتی از شر تو خلاص بشم ماجرای تو باعث میشه لی هاروی اصفال یه بچه پیشه هنگه نزار اما اول یک کلاس کوچولو درباره اقتصاد سوسیالیستی اون طرف آقیانوس آرام به خصوص در باره ی تحصیل منفیه تراکم جمعیت چین و چگونگی ارتباط و با دیدگاه جهانی سیاه پوستا امریکایی به عبارت دیگه آنه میبینید چطوری یک گلوله میزنم تون بخواهید خانم خانم. من تو فکر یه مبارزه ی آدلانه بودم به نظر من که خوبه ها این خوبه وقتی حریف سات بازیش پانه هایست. قلیل لطف دارید. نه، لطفی در کار نیست. حربش که فشن که لولاش من در رفیق ی احب باش بگم ببینم او حالا چیکار کنم یا حالت خوبه من رو بیاریم بیرون های بچه ها روز آمدتون روزتون بخیر خانومه هاست مترجم سازمان ملل کشته شد. سارپ تحت تعقیب است. خیر، خوب تموم شد. داشتم خبر شاهکار جناب هلی رو می‌خوندم. راستش منم تو فکر شاهکار بودم. به من خیانت کردید. شال فکر میکردم همکاران آسیایی باید تا الان ترتیب برنامه تو رو داده باشن خب تو واسه زد موندن به من حق میدی اما کنجکاوش شدم چرا فکر کردی برایی که سر چان آوردی سر تو نمیاد من دوست ندارم پشت سر مرده حرف بزنم اما بین خودت و من و هر کسی که داره میشنوه دیوید چان یه خوک خودخاه و آشغال بود که هر بلایی که به قول تو سرش اومد حقش بود و اما تو شو خب تو هنوز زندگی خب یادت باشه النر از هر دست بدی از همون دست میگیری. مشوش ماکس از در ورودی رد شدی. ما Man är mycket dågolig så jag såg honom allt dags på måndag. Näja sålunda. Om jag öppet bara för mig, om jag är kvarvarm och satsar på att man kan nå målet, kan man inte göra det. Man kan bara göra det genom att ta hand om sig själv. Det är det enda man kan göra. Det är det enda man kan göra. Det är det enda man kan göra. Det är det enda man kan göra. Det är det enda man kan göra. Det är det enda man kan göra. Det är det enda اکنون به یاد علم رو بیاره من قول میدم که این سازمان خود رو وقف سیاست مداخله سیاست هدایت و رحبری بکنه. یک سیاست سور تلبان فعال و خشن خورد زانو بزن تمامه جنوب فرانسه آزو <تصفيق> <مزور> میخوام من شما رو میشنسم نه فکر نمی کنم من شما رو میشنسم ممکنه تو زندگی قبلیمون هم دیگر رو دیده باشیم enemy there a change your strategy. The of strategy to overpower you the yard The art of four interpretations and battle guesstimates Tango fist to fist, the ultimate debate. The art of calm in the action, alert. Not I reach strategy prevail. I necessarily the great. The art of having finesse. I use a knife and get your best. You be fire, I be water. Bring a strike, bloodquest. The art of open flesh, Deep with life, leaving your veins. I may reduce you with the sword, but I respect the remains. The art of eating, passion. If you don't, you get beaten. Don't think this band's repeating. Hungry belly is retreating. Once you cut what's lost, never win at all cost. There's nothing to spend. No one left to be the boss. The art of economics, money over histrionics. Devastating muscle with the dollars, bionics, I'm drinking penny times. Sitting up in a real chronic, practicing training, the art of good over the minus. Don't you sleep on me. <laughs> I could you. be your enemy. Better change your strategy. The art of good over the minus. <laughs> The art of knowing the cost, a thousand four horse vehicles, million dollar troops with provisions and materials, grains and cereals, ceremonial burials, payment and gold should be provided by imperials, the art of surprise, the art of view.